به نام خدای یگانه مهربان سلام افسانه ها ویژگی های مخصوص به خودشون رو دارن برای درک این ویژگی ها توجه به خصلت های سازنده‌ای و تربیتی و پرورشی اونها لازم و ضروریه از ویژگی های کاملا آشکار افسانهها ها خسرت جمعی بودن و شفاهی بودن و تنوع و انعکاس بقایای اساتیری و آداب و سنن گذشته است که نمونه های بسیاری از این افسانهها ها رو یا خوندیم یا شنیدیم. خب در برامی این هفته هزار افسان، افسانه ایرانی از مردمان قوم لور تقدیم میتونیم می کنیم به نام کره کچل یا پسر کچل، برگرفته از کتاب قصه های مردم به گردآوری پژوهشگران مردم مردمشناسی سازمان میراث فرهنگی با انتخاب و تحلیل سید احمد وکیلیان امیدواریم ساعتی رو همراه ما میهمان دنیای ها باشید و شنیدنی افسانه‌های زیبای ایرانو لذت ببرید دوزگاران قدیم پسر فقیر کچلی بود که با مادرش زندگی میکرد این پسر چوپان گوسفندهای پادشاه بود و از این را امرار ما آش میکرد روزی از روزها پسر وقتی داشت گوسفندهای پادشاه رو به صحرا برد به مرد دانایی برخورد اونا با هم به گفتگو نشستن و مرد دانا وقتی فهمید که پسر چوپون گله پادشاه از سر دلسوزی بهش گفت پسر جان هی فتو نیست چوپون گله باشی ها برو برو کسب و کار پدرت رو دنبال کن اون حتما شغلی بهتر از چوپونی داشته پسر که در کودکی پدرش رو از دست داده بود و نمیدونست پدرش چه کسب و کاری داشته با شنیدن حرف مرد دانا به فکر فرو رفت و از خودش پرسید راستی پدرم چه بود؟ اصلا چرا تا به حال مادرم در این مورد به من چیزی نگفته؟ لابد پدرم کاری بوده؟ خلاصه، پسر حسابی به فکر فرو رفت و بعد از چراندن گوسفندها و تحیل دادن اونها به ماموران پادشاه به طرف خونه خودشون برافتاد پسر به محض رسیدن به خونه به مادرش گفت مادر من دیگه چپونی پادشاه رو نمیخوام مادر با تعجب پرسید مگه چیزی شده پسر با مامورای پادشا حرفت شده یا خدای نکرده گرد به گل زده ها پسر گفت هیچ کدوم من میخوام از فردا کسب و کار پدرم رو ادامه بدم حالا بگو ببینم پدرم چیکاره بود مادر سکوتی کرد و بعد گفت پسرچان کار خودت بهتره چکار به کسب و کار اون خدا بیا مرز داری؟ اما پسر افسانه ما دست بردار نبود و اونقدر گفت و اصرار کرد که بالاخره مادر گفت شغل پدر خدا بیا مرزت این بود که سطل مخصوصی داشت به دریا میرفت. و چند ست آب می آورد و توی اتاقها می ریخت و اون وقت آبها تبدیل به طلا و مرواریک می شدن پسر با شنیدن این حرف با خوشحالی گفت ها عجب کسب و کاری منم از فردا همین کار رو دنبال می کنم و بعد ادامه داد بادر جان چرا تا حالا اینو به من نگفتی از فردا دیگه زندگیمون از این رو به اون رو میشه؟ بعد از مادرش خواست که سطل مخصوص پدرش رو بیاره تا فردا اول صبح دریا بره و چند سطل آب بیاره مادر هم سطل مخصوص رو به پسرش داد بله، پسر افسانه ما شغل پدرش رو در پیش گرفت و هر روز چند صد آب می آورد و توی اتاقها می دید تا اینکه گنج و مال زیادی به دست آوردن و به قول معروف زندگیشون از این رو به اون رو شد تا اینکه یک روز که پسر حسابی احساس قرور می کرد به مادرش گفت مادر جان، حالا که وزنمون خوب شده و حسابی بر خودمون کسی شدیم؟ باید برام بری خاستگاری دختر پادشاه مادر با شنیدن این حرف از زبون پسرش با عصبانیت گفت این چه حرفیه که میزنی؟ آخه پادشاه چطور رازی میشه تنها دخترش رو به پسر کچل چوپون بده؟ اگه من این حرف رو بزنم پادشا بی بروبرگیت دستور میده به خاطر این جسارت گردنم رو بزنم کچر گفت پادشاه بیخود میکنه؟ من این حرفا سرم نمیشه من حتما باید با دختر پادشاه عروسی کنم. مادر بیشاره که چاره نداشت قبول کرد و هر روز نزدیک کاخ پادشاه میرفت و اونجا میشه اتفاقا اتفاقاً پادشاه هم اونو میدیدن. اما از شما که نه ولی از کچرچ پنهون که جورت نمی کرد. جلوتر بره و غروب به خونه برمیگشت و به کچل میگفت که پادشاه گفته چند روزی به من فرصت بدین تا کمی فکر کنم و پسر هم حرف مادرش رو باور میکرد سه چند روزی گذشت کم کم حوصله کچل سر رفت و با خودش گفت ای بابا این پادشاه چقدر فکر میکنه و بعد به مادرش گفت باید همین امروز به کاخ پادشاه بری و تکلیف منو مادر روشن کنی مادر بیچاری که چاره نداشت به طرف کاخ پادشاه برای افتاد و در حال خواهشو تمنا کردن برای ورود به کاخ بود که وزیر متوجه اون شد و به پادشاه گفت قربان اجازه بفرمایید اون پیرزن بیاد ببینی مشکلش چیه. پادشاه هم دستور ورود پیرزن رو صادر کرد و پیرزن با ترس و لرز به حضور پادشاه رسید و به محض ورود شروع کرد به گریه و زاری که من از دست این پسر چی کار کنم؟ پادشاه اون رو آروم کرد و پرسید چی شده زن؟ مگه پسرتون چیکار میکنه و چی میخواد؟ پیرزن با ترس و لرز جواب داد ای پادشاه عزیز و مهربان زبونم لال زبونم لال پسرم پسرم چیزی میخواد که من جرأت گفتنشو ندارم میترسم کردنم و بزنی پادشاه که دلش به حال پیرزن سوخته بود گفت بگو مشکل چیه در امانی پیرزن گفت ای پادشاه پسر من چند سالی چوبون گلده شما بود و الان الان زبونم لار اصرار داره دختر شما رو برش خاستگاری کن پاچه شنیدن این حرف خواست از کور در بره و دستور بده کچل و مادرش رو گردن بزنن اما بر خودش مسلط شد و گفت خواستگاری که چیز بدی نیست برو برو به پسرت بگو اگه بتونه از در خونتون تا کاخ منگالی عبریشم پنگ کنه تا دختر من از روی فرشها به خونه پسرت پا بذاره اون وقت دختر مال اون ولی اگه نتونه سرش بالای دار پیرزن با نگرانی از پادشاه خداحافظی کرد و رفت خونه تا هرچی زودتر ترین خبر رو به پسرش برسونه اون فکر میکرد با این شرطی که پادشاه گذاشته پسرش از ازدواج با دختر پادشاه منصرف میشه و به اسطلاح از خر شیتون میاد پایین اما شما فکر میکنید کچل افسانه ما از خر شیتون میاد پایین یا نه ها؟ ادامه افسانه رو براتون طرف میرزم وقتی به خونه رسید شرط پادشاه رو برای پسرش بازگو کرد و از پسرش خواست که سرش رو به باد نده ولی کچل گفت اینکه کاری نداره بعد به مادرش گفت مادرچان نگران برباد دادن سر من نباش چند روز دیگه وقتی دختر پادشاه هروست شد اون وقت میفهمی که من زرنگترم یا پادشاه خلاصه کچل با خوشحالی دست کار شد و ظرف مدت کوتاهی تونست از این ور و ور قالیه های بخره و از خونه تا کاخ پادشاهی پنگ کنه پادشاه هم وقتی قالیای های شمی رو دید دیگه نمیتونست زیده حرفش بزنه و مجبور شد تنها دخترش رو به عقد کچل افسانه مادر بیره بله درست شنیدید خلاصه جشن و شادی در تمام شهر برپا شد و جناب کچل شد داماد پادشاه اما پادشاه همش تو این فکر بود که این پسر کچل چجوری این همه قالی ابریشمی گرون قیمت رو تونسته آماده کنه بنابراین به دخترش گفت دختر عزیزم تو باید هر طوری شده راز این قالی ابریشمی رو از شوهرت بپرسی و دیگه حق نداری پا تو بذاری تو قصر و از عرص و میراث هم محرومت میکنم دختر هم به پدرش خول داد این راز رو کشف کنه. خلاصه وقتی دختر پادشاه پاش رو گذاشت تو خونه کچل سکوت اختیار کرد. و کلامی به زبون نیبرد. هرچی کچل و مادرش ازش میپرسیدن هیچی نمیگفت. و وقتی هم با شوهرش تنها شد زد زیر گریه. کچل با تحجب پرسید که چی شده؟ چرا گریه میکنی؟ ولی دختر سکوت کرد. کچل افتاد به اصرار و خواهش کردن که یه چیزی بگو و بالاخره دختر گفت من من باید بدونم شوهرم که قبلا چوبونه پدرم بوده حالا این همه فرش گرون قیمت رو از کجا آورد اگه ندونم تا آخر عمر سکوت میکنم و حرف نمیزنم کچل سعی کرد زنش رو متقاعد کنه که در این مورد چیزی نپارسه ولی زن راضی نشد و کچل هم راز سطل مخصوص پدرش رو به اون گفت و دختر فردا اول وقت توی فرصت مناسب سطل رو دزدید و به بحانه سرزدن به پدرش که همون پادشاه افثانه ما باشه به کاخ رفت و راز شوهرش رو برای پدرش بازگو کرد و همونجا موند و دیگه به یه شوهرش هم برنگشت دایون اون روز کچل رفت سراغ سطل مخصوص پدرش و دید که سطل سر جاش نیست بل فهمید که کار کار زنشه ولی چیکار کار میتونست بکنه؟ حالا دیگه نه کسب و کاری داشت نه میتونست با پادشا در بیفته بنابراین دست مادرش رو گرفت و راهی شد کجا؟ خودش هم نمیدونست اونا رفتن و رفتن تا به ویرانی رسیدن و همونجا موندن مادر به پسرش گفت پسر حالا که بدبخت شدیم دنبال کار دنبال کارباری برو تا از این بدبختی و فلاکت نجات پیدا کنیم به بعد شروع کرد به آه و ناله کردن که دیدی دیدی دی گفتم این دختره به درد ما نمیخوره اگه گوش کرده بودی الان ما با همون سطل پدر خدا بیا مرزتی هیچ وقت گرسته نمیموندیم کچل گفت مادر من دوباره همه چی رو برمیگردنم قصه نخور معلومی که هنوز پسرت رو نشنختی حالا میبینی چی میکنم کچل اینو گفت و راهی بازار شد توی شلوغی بازار صدای مردی رو شنید که داد میزد کی میاد بریم کو ها هر کی بیاد ضرر نمیکنه. میخوام از گوسفند چاغ و چله که اونجاست آب گوش درست کنیم و سیر بخوریم کی میاد بریم کو کوری کچل یا همون پسر کچل افسانی ما که سخت گرسنهش بود با خودش گفت عجب شانسی خدا رو شکر می‌نم یه غذای سیر میخورم و بعد برمیگردم دنبال کاروکاسبی. کچل با مرد به راه افتاد و رفت طرف کوه. اونا رفتن و رفتن تا به کوهی رسیدن که بالای اون یه غار بزرگ دیده میشد اونا در دامنه‌ی کوه توقف کردند. مرد به کچل گفت: "زود باش، زود باش سر این گوسفند رو ببر که خیلی گرسنمه." کچلم دست به کار شد. وقتی حسابی سی شدن مرد گفت آه، حالا باید بری تو پوست گوسفند و منتظر باشی کچل با تعجب پرسید منتظر؟ منتظر چی؟ مرد گفت ببینم دوست داری صاحب مال و منال بشی یا نه؟ کچل با خوشحالی گفت البته که میخوام البته اصلا من به امید پول در بردم به بازار اومدم مرد گفت پس کاری میگم انجام بده و چیزی نگو حالا هم برو تو پوست گسفند کچل هم بدون معطلی پوست گوسفند رو کشید رو منتظر. منتظرم چند دقیقه بعد کرکسی از راه رسید و پوست رو برداشت و به داخل غار برد مرد فریاد زد آی کچل پا به زمین بکوب پا به زمین بکوب تا گنج بریزه با؟ منم راه رو نشونت بدم کچل هم تون تون پا به زمین کوبید و یه دفعه گنج از زیر زمین بیرون اومد و به پایین فروریخت و مرد با تمام جواهرات و طلاها رو بار شوتری کرد و رفت و پشت سرش رو هم نگاه نکرد کچل افسانه ای ما هر چی منتظر موندید خبری از مرد نیست بعد به هر زحمتی بود خودش را از دست کرکس گرسنه نجات داد و از غار اومد پایین و دید که مردش کلک زده و طلا و جواهرات رو برداشته و رفته کچل سراوسیمه و عصبانی به دنبال مرد به بازار رفت ولی هرچی گشت مرد رو پیدا نکرد گیر غیافه داد و دوباره به بازار رفت تا شاید مرد رو ببینه و اتفاقا مرد رو دید که مثل اون روز داد میزنه که میاد بریم کو و از یک گوسفند چاق و چله گوش درست کنیم و سیر بخوریم کچل جلو رفت و گفت من حاضرم با تو بیام و مرد که کچل رو نشناخته بود به همراه کچل به راه افتاد به طرف کو و باز هم گوسفندی رو کشتن و پوست اون رو کندن و گوشتش رو خوردن. مرد به کچل گفت ها، اگه می به مال و منال خوبی برسی باید بری تو پوست گوسفند. اون وقت صاحب کلی تلا و جواهر میشی ولی این بار کچل زرنگی کرد و گفت من این کار بلد نیستم. خودت پوست گوسفندو بکش رو سرت برو تو غار تا من یاد بگیرم. مرد هم رفت زیر پوست گوسمند و در این موقع کرکسی از راه رسید و اونو برد توی قا و کچل فریاد زد من همون کچل دیروزم <تصفيق> پا به زمین بکوب زود باش وگرنه تا آخر عمرت باید همونجا بمونی و تو یه ها باشی زود باش زود باش مرد که چاره ای نداشت پاو به زمین کوبید و هرچی تلا و جواهر بود برای کچل افسانه ما ریخت پایین کچل هم جواهرات رو بارشتور کرد و رفت سراغ مادرش مرد بر جنس هم همونجا موند و تقمیه کرکس هایی پرستن شد و به سزای اعمال بدش که فرید دادن مردم بود رسید تونی از مردمان و قوم شریف لور رو براتون نقل کردم به نام افسانه کره کچل یا پسر کچل برگرفت از کتاب قصاهای مردم گردآوری پژوهشگران پژوهشگدیده مردم شناسی سازمان میراث فرهنگی به انتخاب و تحلیل سید احمد وکیلیان افسانه ها اگرچه از سرزمین های مختلف اومدن اما وطن خاصی ندارند و متعلق به همه مردم جهانند و در عین سادگی و روانی هزاران رمز و راز و حکمت های ارزشمند در خود نهفته دارند که میتونن در زندگی کاربرد مفیدی برای ما پیدا کنند هزار افزان کار مشترکی بود از نویسنده زینت سالح پور ویراستار سید فری برز اجرام مهران دوستی صدابردار زهره سابری و تیگه کننده زهرا عبدالله زاده تا افثانه دیگر بدرود